سلام خانم دکتر سلام بفرمایید بنشینید چه شده است؟ خانم دکتر از دو روز پیش سرم درد می کند حالت تحوه هم دارم سرگیجه هم داری؟ بله گاهی سرم گیج می رود دهانت را باز کن زبانت را ببینم دل درد هم داری؟ نه. دلم درد نمی‌کند. اجازه بده فشار خونت را اندازه بگیرم. لطفا آستینت را بالا بزن. بله، حتما. فشار خونت عادی است. برایت یک بسته قرص، یک شربت و دو آمپول می‌نویسم. بهتر است آزمایش خون بدهی. شاید چربی خون داشته باشی. کی می توانم آزمایش بدهم؟ فردا صبح قبل از صبحانه به آزمایشگاه برو. خیلی ممنون خانم دکتر. جواب آزمایش را در اولین فرصت میآورم.